لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز راژیو صدای خلافت به خبرهای دولت اسلامی خوش آمدید امید است صحتمند و سرحال باشید نخوست از همه سرخطی چند خبر صلید صلید. صلید. خونساسازی حمله فجر لیبی در شرق مصراته سنین و سوائب انهدام دو ارادتانک نظامی نیروهای سوری در ولایت خیر سقوط یک بال تیاره اطلاعاتی نیروهای اراقی در رمادی <ميحن> کشته شدن دوازده سرباز اراقی در جنوب غرب بغداد امار شش بند برق از سوی اداره خدمات عمومی دولت اسلامی در منطقه کوت و حمله گسترده مجاهدین خلافت اسلامی در منطقه شدل صلیل الصوارئ. صلیل الصوارئ. و این هم مشروع اخبار نیروهای فجر لیبی طابع حکومت در لیبیا یک حمله را در المحیمه نزدیک منطقه ابو قرین در شرق مصراته انجام دادند اما الحمدلله مجاهدین دولت اسلامی با انجام یک حمله استشادی این حمله مرتدین را خونسا کردند و مرتدین با تحمل تلفات جانی و مالی مجبور به عقب نشینی شدند گزارشو از چام می که دو ارادتان که نیرهای نظام سوری در دروازهی ورودی پانوراما در جنوب غربی شهر دیرازور منحدم شده است. پانوراما منطقه استراتیجیک در ولایت خیر درست روز پیش به دست دولت اسلامی افتید. یک تیاره اطلاعاتی نیروهای اراقی در اطراف پایگاه هوایی الحبابیه در جنوب شرق رمادی از سوی مجاهدین دولت اسلامی سقوط داده شد مجاهدین دولت اسلامی بر یک پاسگای نیروهای اراقی در منطقه معامیر در شهر زوبه واقعی در جنوب غرب بغداد حمله کردند در اصر چندین ساعت درگیری 12 سرباز عراقی کشته و یک تانک نوی BMP آنها تخریب گردید دو حمله کننده استشادی دولت اسلامی با استفاده از است که انفجاری بر مقر نیرهای راقی در منطقه سکار در شرق شهرک رتبه حملهور شدند در این دو حمله تلفاتی جانی و مالی به اصفاقی دشمن وارد گردید و حال هم چند خبر از خراسان صلید مجاهدین خلافت اسلامی ولعت خراسان در تازه ترین موارد شب گذشته یک سلسله حملات گسترده‌ای را بالای مواقع ملیشه های پاکستانی در منطقه شدال واقع در اچین انجام دادند. در گیری حوالی ساعت 9 سی میان مجاهدین خلافت و ملیشه های پاکستانی شروع شد. نخست گروهی از استشهادیان خلافت خود را تا مقررات ملیشه ها رسانده با دشمن درگیر شدند، سپس گروه های مهاجم دیگر موزی دیگر این ملشها ها را با صلاح های سقیله و خفیفه آماج حملات خود قرار دادند. پس از مدت اندکی که در گیری مجاهدین خلافت بر دو پوسته این ملشها ها مسلط شدند. در اثر این جنگ دوزده تن ملیشه های آیس آی کشته و هشت میل کلشینکوف، دو پای راکت، دو میل پیکا، دو عدد مخابره، دو عدد دوربین و اشیای دیگر هم غنیمت گردید. ولله الحمد. این در حال است که چند قبل نیز بالای همین ملیشه در همین محل از طرف مجاهدین حمله صورت گرفته بود که در آن تعداد زیاد از ملیشه پاکستانی کشته و سی تن از سرانشان زنده دستگیر شده بودند. اداره خدمات عامه خلافت به کمک الله متعال موفق شدند تا شش بند برق آبی را در منطقه کود ایجاد نمایند. با ایجاد این بند برق ها مناطق مختلف کود به با شمول بازار روشنایی برق منور شده است. جزیت بیشتر را در این گزارش بشنوید این صدای آب یک بند برق از جمله شش بند برقی است که دولت اسلامی در منطقه کوت اعمار نموده است کوت از جمله مناطق است که در اکثر نقاط آن نظام الله عزوجل حاکم است در اینجا بعضی اوقات مزدوران شرق و غرب با تانگها و تیاره تلاش میکنند تا این منطقه را از کنترل خلافت اسلامی بیرون کنند و همینگونه بعضی اوقات با بمباردمان هوایی و حملات توپ به آزار و اذیت مردم این منطقه دست میزنند و مناطق آنها را تخریب و اطفال و زنان آنها را به توبخانه خانه میبندند الحمدلله این مزدوران کفار تا کنون نتوانستاند بالای مجاهدین غالب آیند از سوی دیگر مردم متدین منطقی کو در زیر چتر شریعت اسلامی شاهد زیر بناها و پیشرویها از سوی ادارات مختلف دولت اسلامیاند در همین حال از طرف روز مردم و مجاهدین خلافت اسلامی مصروف بلند کردن پایههای برق ساختن بندهای آب پلها و غیره به نظر می رسند. و از طرف شب از کلکن های منازل مسکونی در کوت روشنایی برق به چشم می خورد. گفتنی است که در مناطق مذکور تا کنون خلافت اسلامی شش بند برق را ایمار و به بهرهبرداری برداری آماده ساخت که به شمول سرای بازار به با بعض مناطق تا کنون جریان برق رسیده است. از خلافت ما بسیار خوشحال هستیم. قبلا در این بازار برق نبود. حال در مناطق و بازار ما برق وجود دارد کل تایم برقونه راتیر اون در خلافت ندیر خوشحال و چی برق در راتیر کو ما از ماز خلافت خیلی خوشحال هستیم که به ما برق مهیا کرد و اطفال از شدت گرمی در امنند. و سوار بازار ل نور آور غرسرا ماز مجاهدین خلافت مجاهدین خلافت اسلامی راضی هستیم از ده سال تا کنون به با بازار برق نیامده بود این اولین بار است که بازار صاحب برق شد مجاهدین خلافت اسلامی نه تنها بندهای برق را نمود بلکه کار در بخش های دیگر هم زیر نظر است و قرار است پلهای های عبور و مرور و دیوارهای محافظتی نیز در نزدیکی ایجاد گردد. کارهای دیگر هم در جریان است. به ما چند بند برق ساختند. ما از خلافت بسیار خوشحال هستیم. پل ها برای ما ساختند. الحمدلله بسیار کارهای خوب صورت گرفت. و امور دیگر هم جریان دارد مردم محل از مجاهدین خلافت اسلامی اظهار خوشی نمودند خوشحالی این مردم به رژیم های تاغوتی و مزدور ضربه بزرگی است که میگویند که خلافت اسلامی مردم عام را به قتل می رسانند در تابستان گرمی شدید است در این موسم گرمی به ما جریان برق محیا شد این به ما افتخار بزرگی است ما از مجاهدین خلافت اسلامی خوشحال استیم من خودم خیاط استم از برق در ماشین خیاطی پنکه و چیزهای دیگر استفاده میکنم. در همه بازار و منطقه برق است مسلمانان محل از مسئولین خلافت اسلامی خواستند تا به این ساحه توجه بیشتر صورت گیرد خواست ما این است که باید سهولت های دیگه هم برای ما مهیا شود تا کنون این گونه سهولت ها مهیا بود. مفتی نافی مسئول اعمار بند برخ ها در منطقه کود در مورد بند برخ ها و پلان های آینده چونین گفت. ما الحمدلله در منطقه کود جریان برخ را فعال کردیم. از منطقه تنگی تا چنار ما برق رساندیم. و از منطقی لغلجو تا مناطق مابین کود جریان برق وجود دارد. مفتی نافی به مردم اطمینان داد تا در آینده نزدیک با تمام ساحات تحت اداره دولت اسلامی برق خواهد رسید و همینطور در مورد ساخت پل‌ها، بندها و جاده‌ها ها به مردم خوشخبری داد. او الحله مننگ نرم او دا و دوی سر ان شله چمالحمل الله تلاش داریم تا در تمامی مناطق تحت سعطررا خللاافت اسلامی برق برسانیم و همینطور کارهای دیگری هم هست که به اداره ما مربوط میشه از خیلی بندها، ها پول ها و سرک ها و اینها نیز قدم برمیداریم میشال الله و تا حدی توان تلاش میکنیم تا به مردم نفر برسانیم به دو سر استالله و دوی تا از دخوان ایناءللهت رسیم فراموش نباید کرد که در تمام ساحات خلافت اسلامی ادارات تعلیم و تربیت دیوان حزبت، دیوان دعوت و المساجد، قضا، شرطه و غیره فعالند که با گذشت هر روز تشکیلات تکمیل و افراد مسلکی با وظایف گماشته می شوند و امور از این بهتر و بهترتر خواهد شد. الله منحج تا منحج السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنونده های رادیو صدای خلافت شما را به برنامه منهج تا منهج خوش آمدید میگم استاد معزز در مبحث پیشین گفت و های به مسلک کمیونزم اراعه کرد ولی بحث نتکمیل ماند خب استاد پیش از این که وارد بحث شوید در خلال برنامه از استخدام مجاهدین غیرفکری در نابود ساختن مسلک و نظام کمیونزم در افغانستان هم گفتید میش کم وضاحت در این مسئله برای شنوانده ها دهید الحمدلله وحده و صلاة و صلام الله نبی بعده أعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي وحلل واحلل من لساني يفقهوا قولي اما بعد در مبحث گذشته مرور مختصر به قدر توان و استطاعت خود نسبت ما مكتب و مسلک و شيوه نظام و نظامداری کمونیسم و فرقش با نظام سرمایهداری گفت و شنودهای خود را تقدیم شنوندگان کردیم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 سرکوب کردن مسلمان میشود با همین یهودی ها همین نصرانی ها همین قضیه را به یک بخشش برای یهودی ها معاف میکنه و یا دشمن متفق در مقابل اسلام چی میشن استاده میشن آلی ای دو مسلک هم او جانبش هم کفار است و ای جانبش هم کفار است فرقش بر ما هیچ نیست و کفر یک ملت واحد است. خب از اوقات وقتی که مسئله اسلام مطرانا باشد به خاطر زدن و به خاطر ریشکن ساختن باز اینها در بین خود هم اختلافات خدا می داشته باشد و اینمی مسلک در تقابل و در مقابله در طول تاریخ به عنوان یک اصل یعنی به عنوان یک اصل اختلاف در بین از اینها بوده این که امروز مسئله زدن اسلام پیش شده اینها متفق شدن خود در کل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 اقدام کرد و نهایت می اقدام همان نظام کمیونیسی و نظام کفری و الهادی را می خواستن که تطبیق کنند و دورتر از افغانستان امریکا واقعی بود که نظام سرمایه داری را می خواست و چون در یکی از احسایه که در یکی از رادیوها شنیدم امریکا در جنگ علیه تروریزم به زعم آنها و به زمی ما, ما مسلمانان جنگ را که بر علی مسلمانان برا اندق تقریبا در دو تا دو هزار از دو هزار دو بابا تا دو هزار چارده تقریبا دو هزار میلیارد دالر به خرچ رسان تا لانه های ترورزم به تعبیر از اینها چیکنن در خاک افغانستان و پاکستان هدف قرار بدن و آن وقت در مقابل افغانستان در مقابل امریکایی ها روس ها واقع بودن و روس, روس یک قدرت استخباراتی و یک قدرت نظامی و یک قدرت فکری در دایره فکر خود بود و زدن روس در افغانستان و تشکیل علیه روس امون پرنسیب سیاسی و قوانین کفری که در جهان حاکم است و روی از او نقش سیاسی اینا پیش میرن. ایجاب نمیکرد که در یک کشور یک قدرتمند یا یک عبر قدرت داخل شده دیگه ابرقدرت قدرت از او چند هزار مایل دورتر تشکیل کند چی کرد؟ چون میخواست که نظام کمیونزم اضافتر رشد نکنه و در او نفس افغانستان که مرکز شرق است خونسا شده و یکی داد مردم در افغانستان بودن که اونها جهاد و قتال یعنی شکل چریکی علی روزها شروع کرده بود. وقتی که متوجه شدن نهایت امر همین مجاهدین بیفکر رو بی برنامه و بی‌مقصدند الا ماشاءالله یک چند قید اخلاقی بالای این روند پیشین جهاد می لگانیم تا ماخوذ و مجرم قرار نگیریم در نزد الله سبحانه و تعالی اینها چی کردن برای اینها برنامه طرح کرد تا دشمن دو دست خود توسط امین مجاهدین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 درک کرده بود و مطالعه یمیک نسبت به افغانها داشت که افغانها نسبت به کشور سودی به یک کشور دینی نظر می و کشور سودی یگانه کشور است که اگر از این آدرست جهاد نفیر عام شود و به یک, یک قضیه آم شو و مطره و جهاد بر روس روسها اعلان شد این مردم زودتر میپذیرد و واکنش و اساسیت نسبت به قشون سرخ یا نظامیهای روسی نشان امون بود که امیر حبرها را جمع کرد و در نفس سودی کانفرانس شد و یک تعداد و یک چند آیت و چند احادیث در رابطه به فرضیت جهاد گرفتن نهایت مجلس امه. یعنی فتوا صادر شد که در افغانستان روس روسها جهاد فرض عین است خود در نفس این مجلس کسی نبود که جیهاد در نفس سودی چه قسم است چون مردم بی فکر بود و امین بود که جیهاد شروع شد لورالکورنا یک معرخ است تاریخ ملل جهان یکش یک سفر نام است که تاریخ افغانستان به اینوان یک انسان غیر جانبدار چی کرده؟ نشته کرده او میگه میگه در جیهاد که در افغانستان روی دو انگیزه شروع شد در اول یکی به ملی چون افغان همه در مقابل اجنبی ها جنگ را پیش از اسلام اینا در برابر چند امپراتوری استاد شدن و جنگ های خود داشتن ولی بی نتیجه و بعد از او جنگ روی مذهب و دین که انگیزی از انگیزی مذهب و دین و این آیه قرآن کردین کتب علیکم القتال و هو کرخل لکم یک تعداد وادار به این ساخت تا در برابر روس ها چی شوند ولی بعدا میگه در جنگ افغانستان علی روس ها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 در افکار اینها به سه چیز ایمان و به چیز کفر بود و سه چیز که کفر بود او الله و دین و مالکیت فردی بود و مسئله دیگری که وضاحت دانیم که تاریخ اینها در مقابل طبقات تفسیر میکنند و میگن که همین یک قشر قدرتمند همیشه از یک قشر ضعیف و فقیر استفاده چی کرده؟ سو و استفاده و بهرکشی کرده و اینمی فقیر و مظلوم وقتی که از حق خود دادخواهی در برابر اینمی مردم قدرتمند و خان و ثروتمند کرده در, در بین اینمی کشمکش در بین اینها کشمکش ایجاد جده و اینمی کشمکش بوده که بار بار تکرار شده و بار بار این فاجعه در بین بشریت بوده و تاریخ اینا تفسیر طبقاتی میکنه و نظر اینها در پیوند به دین و دینداری هم این است که اینها میگن که دین یک وسیله از وسایلی است که ها را در دام مندازه مم. یعنی دین یک مفکوره و یک تصور است که انسان ایجاد کرده برای بخاطر این که از مردم مظلوم و, و فقیر چی کنه بهرمندی مادی کنه در حال که نظر اینها یک نظر پوچ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 خطرناک دیگه این است که ارتباط اخلاقی و خانوادگی را سبب رشد مسلک سرمایه داری و میگن که بجایش روابط جنسی چی شوه؟ جایگزین شوه یعنی ما ایره به عنوان یک اصل دیدیم در افغانستان هم دیدیم که یک تعداد کمونست که فکری کمونست بودن و در امین حزب خلق و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 مطرح شده و یک بخش اعظم از مسائل مربوط به هزم در امین مسئله ترکیز میکند که روابط محدوده های اخلاقی بین محرم و نامحرم باید حفظ نشه بلکه سبب رشد نظام سرمایه باید در جایزی اختلاط جنسی شد ما دیدیم ما مشاهده کنیم یعنی شواهد مستند ما دیدیم که یک اکثر خلقی ها و پرچمی ها برالاوی از این که یک قرارداد اخلاقی به زعم خودشان بین زن و شوهر وجود داشت ولی زنهای اینها این بدبختار می که با رفقای حزبی در دیگه نواحی من حیث مال مشترک هم ارزای غرایز می و در کل آخرین دو مسئله دیگر که در این حزب به عنوان مسائل بسیار خطرناک ذکر میشه که اینها کلا به نفع دین رای می دهن. و بیشتر انتقاد میکنن جرح میکنن و به نحوی از آنها دین, دین و دینداری را منفی بر مردم معرفی میکنن ولی نسبت به با یهود باز اینا استثناء قائل میشه که مخالفت با یهود مخالفت با یک نژاد برتر مینا و در در در کل چون رهبران این مسلکها بیشترشان یهودی است آنها میگن که مذهبی یهود یک مذهب مظلوم و یک مذهبس است که سر زیاتی شده و مذهبی یهود چی می کنه است که نسبت به مارکس میاید که مارکس هاخام یهودی نواسی یکی از هاخام های هاخام در فرهنگ دی خدا به پیشوا و مقتدای یعنی مذهب و مسلک یهودیت چی میشه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 آلمان و شرق و بعضی کشورهای دیگر هم مورد اجرا قرار گرفته و بیشتر حاله در کشور چین و در کشور که فیدل کاسترو به عنوان یک حاکم مانده آه کیوبا آه مورد اجرا قرار میگیره ولی در کل نظام سرمایهداری باز هم بالای این نظام چی شد حاکم شد و فیلند نظام سرمایهداری در کشورهای شرقی و غربی مورد اجرا قرار گرفته و شیوه از نظام داری که خبیس ها و همین بدبخت ها این نظام پیش می برند جزاك الله خير استاد ما مسلمان ها میگیم که الله خالق تمام مخلوقات است و اینها میگویند که تصور خالق وقت در انسان به وجود آمد که مجبور شد یعنی چه قسم چون در خلال بحث این مسلک کلا به نفع الله سبحانه وتعالی یا تصور الله رای میدهد و نظرشان در پیوند به همین مسئله این است که میگه وقتی که سر یک تعداد مردم ظلم صورت گرفت و یک تعداد مردم های قدرتمند و زورمند از وجود آنها استفاده کرد به نفع خود نهایت امر همین انسان مجبور شد وقتی که مهم. مجبور شد نفس مجبوریت و محرومیت تصور الله و خدا را در اینمی بنده چی کرد ایجاد کرد ما میگیم که در جهان جهانبینی اسلامی ما گفتیم که جهان دارای است و جهان روی یک برنامه هدفمند برا انداخته شده و ای خالق یک خالق مدبر و دانا و توانا و متصرف از بالای جهان ولی در جهان بینیمادی گفتیم که جهان هیچ خالق وجود در جهان با نظر به فرهنگ و فکر اینها اللهی وجود نداره ولی در مسلک کمیونزم مشخص گفتیم که اینها نظرشان در پیوان به الله سبحانه وتعالی این است که ما میگیم که خالق مخلوقات را به اساس یک هدف خلق کرده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 و سببشه اینمی محرومیت و مجبوریت و مظلومیت میگن و بیشتر بعد از او تصور خالق ایجاد شد باز تصور جنت و دوزق ایجاد شد خاطر بیشتر تسلیت همان انسان مجبور که وقتی که ظلم سرش میشد باز تصورش به طرف این جنت دوزق میرفت که ظالم زیادتر متوجه میسا که ظالم روز خواهد رسید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 و بیشتر وقت خدا همین طراهای این مذهب و این مسلک صرف مطالعه و صرف پژوهش و تحقیق کردن ولی باز هم مذهب اینها بقنا نکرد میگن چون مذهبی نبود که موافق سرشت و فطرت انسانی باشه و به با اصول انسانی و موازین منطقی و علمی استوار باشه همین بود که بیشتر از 100 سال یا اضافتر یا کمتر در جهان بقای خدا حفظ نکرد. اما مدت که حفظ هم کرد ما در مبعثه گذاشته گفتیم که به زور قدرت نظامی یعنی زور باروت و زور اسلحه و آتش آهند بود که بقای این مذهب در نفس بعضی ممالک حفظ کرد. جزاکالله خیر. شنانده های گرامی شما مباحثهی که پیرامون نظام کمیونزم صورت میگیره. شما مشنوین می که عقاید پوچ مزخرف از اینا در افغانستان و در جهان سرایت کرده. این بحث خاطر ازی است که تمام مردم باید بدانند. که نظام کمونیزم یک نظام پوچ مزخرف و خلاف عقل انسانی است. تا تمام شنوانده ها بدانند و کسایی که در این معرض کمونیزم مبتلا است باید از این عقیده و نظر توبه کرده و با اسلام رجع کنن چون وقت برنامه ما به پایان رسیده ناگزیر با شما الله حافظی میکنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما